اصل ویتامین هایی برای تقویت کارهای فکری و حافظه برای اینکه غذای مناسب جهت فعالیت مغز تهیه کنید مصرف انرژی بدن به تنهایی کافی نبوده بلکه بایستی نیازهای آن را به پروتئین و عناصر معدنی از قبیل فسفور و کلسیوم نیز تأمین کنید در جستجو برای یافتن علل برخی از بیماری‌های اسرارآمیز، رامیز مانند بریبری بری و اسکوربوت و ضمن تلاش برای خوراندن مواد غذایی تصفیه شده به حیوانات یعنی نمک‌های معدنی و پروتئین‌ها، آلبومینوئیدها، گلوسیت‌ها، قندها و نشاسته‌ها و لیپیدها، مواد چرب که به صورت خالص تهیه اند، پی بردیم که رژیم غذایی برای حفظ زندگی با این سبک نامناسب است. همچنین مشاهده شد که مقادیر حداقل برخی عناصر که اکثر آنها ضروری بوده و برای حفظ سلامتی لازم است، تعادل حیاتی را حفظ میکند. این عناصر ویتامینها هستند. وجه تسمیه آنها این است که در هنگام کشف به غلط تصور شده بود که این مواد از اسیدهای آمینه هستند شکل تاثیرگذاری آنها هنوز کاملا روشن نیست ولی میدانیم که به صورت کاتالیزور در پدیده های اکسیداسیون، احیاء ارگانیک و جذب و دفع فعال هستند هر یک از آنها نقش خاصی را ایفا می کند زیرا با فقدان یکی از آنها با وجود آنکه سایر موارد در مقادیر مناسب در رژیم غذایی حضور داشته باشند بیماری‌های خاصی ایجاد می‌شود که آنها را با نام کمبود ویتامینی میشناسند. امروزه کمبودهای شدید ویتامینی از زمانی که مواد غذایی به نسبت گذشته متنوعتر شده کمتر اتفاق می‌افتد. ولی غالباً با های پیش کمبودی که یا بر اثر کمبود مقدار ویتامین مصرفی و یا بر اثر تهیه مواد غذایی به صورت ناقص، و یا به دلیل نابود شدن ویتامین ها در قسمت های مختلف لوله گوارش به وجود می‌آیند، مواجه می شویم. در این حالت، برخی از ویتامین ها در معده از طریق تغییرات غلزت اسید کلوریدریک که در آن وجود دارد، از بین می روند. از سوی دیگر، زخیره ویتامین در سلول های کبدی افراد مسن، به نسبت افراد بالغ به شکل نامناسب انجام می شود. بنابراین در صورتی که مایلید سالم مانده و تعادل عصبی مناسبی داشته باشید بهتر است ویتامین ها را در مقادیر کافی یعنی حدود 200 میلیگرم در روز همراه با سایر شرایط خصوصا شرایط تغذیه‌ای و فیزیولوژیکی مصرف کنید در این رابطه همونطوری که در کتاب بیودینامیک مغز متذکر شدم ویتامین B1 و به طور کلی مجموعه ویتامین های گروه بی، تیامین، پیریدوکسین، بیوتین، ریبوفلاوین، نیاسین، اسید پانتوتنیک، بتائین، کولین و غیره نقشه بسیار مهمی را بر عهده دارند. در این رابطه در وهله اول این گروه ویتامین ها و در ادامه برخی از ویتامین های دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ویتامین دی، PP، A و C که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای کارایی مناسب بدن لازم هستند. بخش اول ویتامین B1 و مجموعه ویتامین های گروه B ویتامین B1 که به آنتیامین یا آنورین نیز گفته می شود، انتقال جریان عصبی را تأمین می کند. حذف کامل آن باعث ناپدید شدن تقریبا کامل دانه هایی که به آنها ذرات نیسل گفته می شود، تخریب و آسیب همراه با زخم اعصاب پیرامونی و همچنین بخشی از اعصاب پشتی ستون فقرات و از نظر عملی باعث ایجاد بحران تشنجی خواهد شد. اگر مقدار این ویتامین کافی نباشد تخریب گلوکوز در مرحله از آن متوقف شده و سمومی واقعی برای بافت عصبی تولید می کند. این ماده همچنین در تشکیل دیاستازی که برای بکار بردن گلوکوز درون درونسلولی لازم است، دخالت دارد. در این حالت شخص عصبی بوده و دچار بیخابی، ناراحتی های قلبی، هوابلی و سوء می گردد. در عوض در صورتی که شخص به مقدار مناسب و کافی ویتامین B1 مصرف کند، فعالیت فکری او بهبود یافته و اندیشه او باز شده و حافظه اش تقویت می‌گردد. با توجه به رابطه‌ای که بین گلوکوزی که باید تبدیل شود و ویتامین B1 وجود دارد، چنین نتیجه می‌گیریم که هر اندازه میزان مصرف گلوکوز، قندها و نشاسته‌ها بیشتر باشد، باید مقدار بیشتری از این ویتامین مصرف شود. نیاز متوسط یک فرد بزرگسال به ویتامین B1 دو میلیگرم در روز بوده و تجویز بر این اساس است که مقدار مصرف به چهار تا شش میلیگرم افزایش یابد. در نوجوانان، کارگران، خانومهای شیرده و خصوصا افراد مبتلا به بیماریهای کبدی که کبدشان برای تثبیت ویتامین B1 دچار اشکال است، از این مقدار نیز باید فراتر رفت. از سوی دیگر، چون تأثیر آن با حضور ویتامین C بیشتر می شود، بهتر است شخص مواد غذایی را که در مقادیر زیادی از این دو ویتامین برخوردارند، با یکدیگر مصرف کند. خوشبختانه ویتامین B یک کمیاب نبوده و آن را می توان به مقدار زیاد در مخمر آبجای تازه، جوانه غلات هویج، سبوس، عدس، میوه های روغندار، گردو و فندوق، زرده تخم مرغ، جگر و سبزی های سبز یافت. همچنین باکتری های ماست نیز مقدار قابل توجهی از آن را در لوله گوارشی تولید می کنند. از میان سایر ویتامین های گروه B، پیریدوکسین یا ویتامین بیشش، سوای سایر خواص خود، اعصاب تحریک شده و افراد بیخواب را تسکین می دهد. کودکانی که رژیم غذاییشان از نظر ویتامین بیشش دچار دو دوچار کم بود باشد، به تشنج مبتلا می شوند. علاوه بر این موارد، آزمایش هایی که در دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده، نشان داده است که موشهای خرما که ویتامین بی شش در مواد غذاییشان کاهش یافته و یا حذف شده است، دچار حملات سکتئی شده‌اند. و هر اندازه کم بود بیشتر است این حملات نیز شدیدتر تر می باشد در رابطه با بیوتین یا ویتامین H این ماده تولید انرژی کرده و برای حفظ سلامتی مغزی که در میان افرادی که کارهای فکری دارند و معلمین و دانش آموزان مورد نیاز است مفید می باشد این دو ویتامین معمولا در مواد غذایی که دارای ویتامین B1 هستند یافت می شود و سرانجام آزمایش‌هایی که روی گروهی از داوطلبین انجام شده نشان داده تغذیه‌ای که فاقد یک یا چند ویتامین گروه بی باشد می‌تواند به سرعت فشار عصبی، اسپاسم‌های ازولانی و تکان‌های غیرقابل اجتناب دست‌ها و سر را ایجاد کند. گونه که قبلا نیز تأکید کردیم، در تغذیه صحیح می‌توان از طریق مصرف جوانه گندم، مخمر آبجو و میوه‌های روغندار گردوه و فندوق و ماست مقدار مورد نیاز ویتامین های گروه بی را به دست آورد. بخش دوم اهمیت ویتامین دی ویتامین دی ماده است که بهتر است آن را نادیده نگیریم. زیرا قسمت مهمی از متابولیسم کلسیوم یعنی انصری که برای کارهای مغزی لازم است مشروط می سازد. متاسفانه این ویتامین در مواد غذایی معمول ما به مقدار کمی وجود دارد. ماهی ها، کره تابستانی، کره کاکاو و روغن کاکاو، اصاره پوسته کاکائویی که زیر آفتاب پن شده باشد، مقادیر قابل توجهی از این ماده را در خود دارد. همچنین روغن جگر ماهی ها، تون، مرو، فلتان دارای مقدار زیادی از این ویتامین ها هستند. در زمستان با مصرف روغن جگر ماهی که به صورت کپسول نیز موجود است، می توان آن را تأمین کرد. البته این حالت بیشتر برای زمستان مطرح است، زیرا این ماده در تابستان از استرولهای پوست تحت تأثیر مستقیم تابش آفتاب تشکیل می شود. استفاده متعادل و با نظر پزشک، چیزی که معمولا به ندرت به آن توجه می شود، از حمام آفتاب میتواند، مقادیری از ویتامین دی را که برای بدن ضروری است، تولید کند. بخش سوم، ویتامین پی پی فقدان آمید نیکوتینیک یا ویتامین پی پی که این نام را از پلاگ را پروانتیف به معنای پیشگیری از پلاگری گرفتند، باعث ایجاد یک ناراحتی عجیب و خطرناک یعنی پلاگری می شود. که با ناراحتی‌های عصبی و آسیب‌های جلدی تظاهر می‌کند. بیماری پلاگری برای اولین بار در اسپانیا مورد توجه قرار گرفت. هرچند کمی پیش از آن در قسمت شمالی ایتالیا، خصوصاً در لومباردی و همچنین در برخی از نقاط آمریکا شدیداً گسترش یافته بود. این بیماری به صورت خستگی غیرمعمول، غمگین بودن، از دست دادن حافظه بیخوابی، سرگیجه و ناراحتی‌های خاص دیگر بروز می‌کند. در همان حال علائم دیگری نیز که در اینجا روی آنها تاکید نمی‌کنیم از طریق مجاری گوارشی و پوست بروز می‌کند. اگر بیماری تداوم پیدا کند، ناراحتی‌های گوارشی تشدید شده، ضعف و بیحالی به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد، ناراحتی‌های عصبی نیز شدید شده و منجر به جنون پلاگری خواهد شد. که بیمار را به سمت خودکشی سخ می دهد. چون پلاگری خصوصا در میان افرادی که تقریبا به صورت انحصاری از آرد ذرت تغذیه می اند رایج بوده است، در اوایل تصور می‌شد که پلاگری بر اثر انصری سمی که در غلاط به صورت گروهی یا انفرادی وجود دارد ایجاد می شود. ولی بعدها معلوم شد که بیماری پلاگری اساساً به دلیل فقدان ویتامین پی, پی در ذرت ایجاد می شود. اشخاصی که به این بیماری مبتلا می شوند با تجویز چند میلیگرم از این ماده به زندگی عادی باز میگردند. در واقع اگرچه این ناراحتی بر اثر فقر ویتامینی به وجود می آید، اما در اکثر موارد به دلیل ناراحتی های جنبی دیگری که از کمبود پروتیت ها و چربی ها ناشی می شود، حالت هپی پیدا می کند که مطالعه انگیزش آن را مشکل می سازد. به هر حال ویتامین پی پی زمن آن که برای کارایی مناسب سیستم اعصاب و خصوصاً حافظه ضروری است، مصرف مقدار متناسبی از آن در رژیم غذایی کار مفیدی است که نسبتاً ساده نیز می باشد. در هر صورت در مورد ضعف شدید یا از دست دادن حافظه، اختلال روحی همراه با اندیشه خودکشی، و ضعف عمومی همراه با سردرد مداوم بهتر است از آمید نیکوتینیک استفاده کنید. در اینجا متذکر می شوم که قهوه نیز تقریبا از نظر ویتامین پیپی است پی در یک فنجان قهوه یک تا سه میلیگرم از این ویتامین وجود دارد و چون نیاز روزانه بدن به ویتامین پیپی پانزده پی تا بیست میلیگرم است واضح است که مقادیری را که در قهوه موجود است نمی توان نادیده گرفت. برعکس در چای ویتامین پی, پی وجود ندارد. متاسفانه مصرف قهوه به مقدار زیادی تارهای عصبی را تحریک می کند. به همین خاطر نباید آن را شب نوشید. زیرا می تواند باعث خوابی شود. قهوه به خاطر کافئین موجود در آن بیشک به یک مغز خسته اجازه می دهد که به کار خود ادامه دهد. ولی دیر یا زود بدن مقدار زیاده از حد آن را احساس خواهد کرد. از میان مواد غذایی که دارای ویتامین PP پی پی نیستند می توان از نشاسته، شکر سفید، آرد ذرت، چربی ها و روغن های گیاهی یا حیوانی نام برد. بخش چهاررمم، ویتامین A و قدرت بینایی به نظر نمی رسد که ویتامین ای نقش مهمی در عملکرد فکری و حافظه داشته باشد ولی به طور غیر مستقیم منافعی برای اشخاصی که به کار فکری اشتغال دارند به همراه خواهد داشت در واقع این عنصر به حفظ سلامتی بینایی و تحریک اعمال قرنیه و شبکیه کمک میکند آشکارترین نشانه کمبود ویتامین A، ای، ایکس روفتالمی است که بر اثر از هم جدا شدن و آسیب قرنیه به کوری منجر میشود کمبود جزئی این ویتامین باعث شب کوری میشود به طور کلی، یک محصل، دانش آموز یا کسی که کارهای فکری انجام می دهد و غالباً این کار را زیر نور مصنوعی انجام می دهد، همیشه چشمهای خود را خسته کرده و به همین دلیل باید با مصرف مقدار کافی ویتامین ای از چشمهای خود محافظت کند. البته این کار مشکل نیست، زیرا این ویتامین به مقدار فراوانی در سبزیهای سبز، میوه ها، جگر و کره تابستانی یافت می شود. روغن جگر ماهی ها به عنوان مثال مرو یا فلتان نیز مقدار قابل ملاحظه از این ویتامین را در خود دارند. و سرانجام ماده قرمزرنگ هویج یا همان کاروتین در کبد به ویتامین A تبدیل می شود. البته به شرطی که این انصر دچار آسیب های شدید نشده باشد. معمولاً دو میلیگرم کاروتین میتواند 5صدم میلیگرم ویتامین A تولید کند. در این رابطه شایان توجه است که در جریان جنگ جهانی دوم خلبانان انگلیسی برای بمباران آلمان در شب تحت رژیم هویج قرار داشتند تا بتوانند بهتر ببینند. معمولا نیاز به ویتامین A از 20صدم تا پنجا میلی میلیگرم در روز متغیر است. ولی مقدار مناسبی که بتواند قدرت بینایی خوبی را ایجاد کند 5 تا 6 برابر این مقدار استاندارد است. من شخصا توصیه می‌کنم که مواد غذایی را که از نظر ویتامین A غنی هستند زیاد مصرف کنید. بخش 5 ویتامین C. ویتامین C برای بدن ضروری بوده و به وفور در پوسته مغز یا کورتکس و مخچه یافت می شود. به نظر نمی رسد که به طور مستقیم در مکانیسم مغز دخالت داشته باشد. در عوض عملکرد اساسی در کار ازولانی و کارایی قدرت فوق کلیوی دارد. به عبارت دیگر، این ویتامین دارای قدرت تقویت عمومی بوده و به عنوان یک پیشگیری کننده از همه حالتهای خستگی و کار بیش از حد، در مورد عضلات و یا روان شخص به کار می رود. بنابراین می توان این ویتامین را به ورزشکاران و افرادی که کار فکری انجام می دهند، خصوصا دانش آموزان در دوره امتحانات توصیه کرد. از این ویتامین باید به مقدار 80 تا 150 میلی گرم در روز مصرف کرد. مصرف این مقدار اشکالی ایجاد نمی کند، زیرا ویتامین C در تمام مواد غذایی معمول ما، خصوصا میوه های دارای واکنش اسیدی و سبزی های دارای کلروفیل یا میوه های قرمز رنگ وجود دارد مثلا یک کاهو که وزن آن 100 گرم است 30 میلیگرم ویتامین C دارد و دو عدد پرتقال هر یک 30 میلیگرم گرم ویتامین C دارند که با مصرف آنها تقریبا نیاز روزانه برطرف می شود برای مصرف برخی از مواد غذایی که حد اکثر ویتامین C را در خود دارند باید یک رشته احتیاط ها را رعایت کرد الف چون این ویتامین در آب حل می شود لذا هرگز نباید سبزی ها را به مدت طولانی خیسانده و یا آنها را به قطعات کوچک خورد کرد زیرا سطح تماس با مایع به نسبت موقعی که سبزی به قطعات درشت بریده شده بیشتر می شود به همین دلیل باید قسمتی و یا همه آبی را که سبزی در آن پخته شده مصرف کرد یا اینکه آن را در آب بسیار کم پخت و یا بهتر از همه سبزیها با بخار پخته شوند. پختن سیبزمینی با پوست آن از عبور ویتامین C جلوگیری کرده و به همین دلیل توصیه می‌شود. ب، این ویتامین توسط اکسیجن هوا از بین می رود. بنابراین نباید سبزی‌ها را مدتی طولانی قبل از مصرف پوست کند یا رنده کرد. عمل اکسیداسیون در فلزات در تماس با ویتامین C می می‌شود. بنابراین بهتر است برای خرد کردن این گونه سبزی ها از کارت ها و رنده های زنگ استفاده کنید. همچنین پختن مواد در محیط قلیایی باعث تسریع اکسیداسیون ویتامین C می شود. لذا هرگز نباید بیکربنات دو سود به سبزیها اضافه کرد. در عوض ویتامین C در محیط اسیدی بهتر حفظ شده و زدن چاشنی به سالات ها یا کمی لیمو و یا کمی سرکه توصیه می‌شود. جیم، سبزی‌ها و میوه‌ها قسمت مهمی از ویتامین C خود را از زمان چیدن تا هنگام مصرف از دست می‌دهند. به همین دلیل باید تا حد امکان مواد غذایی را به صورت تازه مصرف کرد. برگ‌های سبز خراب و زرد شده تقریبا ویتامین C خود را از دست داده‌اند. میوه ها و سبزی هایی که از طریق گرفتن آب آنها یا نمک سود شدن کنسرو می شوند نیز مقدار زیادی از این ویتامین را از دست میدهند. در طول زمستان مقدار ویتامین C سی سیب زمینی کاهش می یابد و از اواسط بهمن ماه به بعد دیگر در آن ویتامین C وجود ندارد. دال هر اندازه که زمان پخت طولانی تر باشد مقدار ویتامین C از بین رفته بیشتر خواهد بود. لذا بهتر است از روش‌های پخت سریع استفاده شوند. به این ترتیب ویتامین C در های تحت فشار که غذا را به سرعت می‌پزند، به شکل مناسب‌تری حفظ می شود. روش آشپزی معمول به طور متوسط نیمی از ویتامین C مواد غذایی را از بین می‌برد، اما برعکس سرما آن را حفظ می‌کند. از این نکته می‌توان به ارزش سردخانه‌ها و فریزرها برای نگهداری سبزی‌ها و میوه‌ها پی برد. متذکر می شویم که برخی از مواد غذایی، نظیر نشاسته، آرد حبوبات، شکر سفید، آردها، اصاره گوشت، تخم مرغ، سفیده و زرده، چربیها و روغنهای حیوانی و گیاهی دارای ویتامین سی نیستند. دانه های جوان نزده و مخمر آبجو به مقدار بسیار کمی ویتامین سی دارند. بخش ششم تذکراتی در مورد اکثر ویتامین ها. اطلاعات دیگری را که در مورد اکثر ویتامین ها به کار می رود، به تذکراتی که در مورد ویتامین C داده شد اضافه می کنم. گرما به صورت جزئی و یا کلی بسیاری از ویتامین های مواد غذایی را از بین می برد. بنابراین باید مواد غذایی خام را به مواد غذایی پخته ترجیح داد. تجربه در این مورد نشان داده سگ‌هایی که منحصراً با گوشت پخته تغذیه شدهاند پس از حدود پانزده روز ضعیف شده و پس از یک ماه می‌میرند در حالی که سکهایی که توسط گوشت خام حتی به تنهایی تغذیه شده اند در سلامتی کامل به سر میبردهاند. ولی این امر به آن معنا نیست که باید به صورت مطلق از یک رژیم خام‌خواری استفاده کرد عادتی که انسان در طول قرن‌ها داشته و به آن خو گرفته است تغذیه از طریق مواد پخته و تقلیص شده می باشد. اشتهای کما تسنعی و هضم سری سبب می شود که انسان نتواند در اکثر مواقع مواد غذایی را فقط به صورت خام بخورد. از آن گذشته، عناصری نیز وجود دارند برای آنکه کاملا تحلیل بروند باید پخته شود. به عنوان مثال، مقدار هزم پوره سیب زمینی در حالت خام پنجاه درصد و در حالت پخته 95 درصد می باشد. این مسئله در مورد سفیده تخم مرغ و پروتئین های لوبیانی صدق میکند. از سوی دیگر تعدادی از ماهی ها دارای ماده ضد ویتامینی هستند که ویتامین B1 را از بین میبرند و چون این ماده توسط گرما تجزیه میشود لذا پخت این ماهی ها ضروری است. ب. برخی از ویتامین های شیر نسبت به تأثیر نور بسیار حساس هستند. مثلا اگر شیر ای را که در بطری های شفاف ریخته شده در برابر تابش آفتاب قرار دهیم، در عرض یک ساعت بیست تا چهل درصد از ویتامین B1 خود را از دست خواهد داد. در روشنایی یک مغازه یا آشپزخانه این مقدار با سرعت کمتری از دست می رود، ولی به هر حال در عرض چند ساعت می تواند به سی درصد نیز برسد. ام جان کزره، رئیس ایستگاه تحقیقات پیرامون کیفیت مواد غذایی انسان از مؤسسه ملی تحقیقات کشاورزی دیژون در گزارش خود می نویسد. ما در مورد شیرهای استریلیزه که برای نگاهداری طولانی تهیه می شوند، نشان داده ایم که زخیره شیر در بطریهای شفاف و بدون حفاظت از نور می تواند نه تنها باعث از بین رفتن ویتامین ها شود، بلکه پس از گذشت مدتی تعم ناخوشایندی نیز در آن ایجاد خواهد شد. این تخریب تعم بر اثر تغییرات ایجاد شده در پروتئینهای محلول در شیر بوده و ویتامین B2 نیز نسبت به نور حساس است. شیشه سفید و مواد پلاستیکی شفاف با شرایط شیر مطابقت ندارد و بهتر است از شیشه های قهوه ای قرمز و کارتون های تیره یا پولی اتیلن که جنس آنها نفوذ پذیری نور را کاهش دهد استفاده شود. جیم از ویتامین های با احتیاط استفاده کنید و به عبارت دیگر از مقادیر تجویز شده فراتر نروید. این مواد مصنوعی و غالباً بیش از حد تقلیز شده اند و می توانند باعث هیپرویتامینی حاد یا مزمن خصوصاً در مورد ویتامین های ای و دی شوند. هیپر ویتامینی مزمن ای که اساسا از طریق از دست دادن اشتها، دردهای تحریک پذیری، خارش شدید، خشکی و ترک لب، ورم لسه و چند ناراحتی دیگر در زمینه رشد تظاهر می‌کند، نسبتاً خوشخیم است. زیرا به محض آنکه مصرف آن متوقف شود، ناراحتی‌ها نیز به سرعت از بین خواهند رفت. در عوض هیپر ویتامین دی خطرناک است. و در مرحله اول، با علائم حشداردهندهی نظیر خستگی، از دست دادن اشتها، تهوع، اتش شدید، ادرار فراوان و یبوست آغاز می شود، که با بروز این علائم، باید سریعاً مصرف دارو را متوقف ساخته و یا حداقل اقل موضوع را به پزشک متذکر شد، تا مقدار آن کاهش داده شود. اگر این کار انجام نشود، حالت کلی بیشتر و بیشتر روبه وخامت گذاشته، بیمار خوابالوت شده و از سردرد شکایت می کند. فشار خون شریانی وی افزایش یافته و در ادرار وی آلبومین و مقادیر بالایی از کلسیوم دفع می شود. زاییات در خون تجمع کرده و سریعا می‌تواند شخص را بکشد و یا اینکه پس از درمان آسیبهای کلیوی دائمی در او به وجود بیاورد. درمان اساساً از یک سو شامل حذف یا کاهش مقدار مصرف ویتامین D و از سوی دیگر رساندن آب به بدن بیمار می باشد. ضمناً باید رژیمی را که از نظر کلسیوم فقیر باشد برای وی در نظر گرفته شود. در وهله اول این پزشک است که باید روش درمانی مناسبی را برای بیمار در نظر بگیرد. وجود بیش از حد ویتامین سی از طریق داروها یا هیپرویتامینی غذایی نگران کننده نیست و طبق نظریه دکتر هارد ان اسکرانز استاد شیمی دانشگاه سندیاگو کالیفرنیا مقدار زیاد از حد ویتامین سی توسط یک آنزیم از بین می میرود دال برای آنکه کاملا از کمبودهای ویتامینی جلوگیری شود و یک تعادل مناسب مغزی به وجود بیاید بهتر است صورت غذایی خود را متنوع کرده و به شکل منظم از مواد غذایی که در کتاب راهنمای درمان طبیعی از آنها با عنوان مواد اجازامیز نام برده شده و عبارتند از جوانه گندم گندم جوان زده، مخمر آبجو، مالت و گرده گل استفاده کنید.